داری داره خون به جیگر ما خواهر میکنی کجا بودی خان داداش کجا چیه کویت قربت آواره ارزشش رو داره اون زنی که ولش کردی این ارزش همه چی رو داره مظلوم مظلوم زنانگی کرد باسن با رو پرون آمردی کردم دارن نه قناریه عین مرگش عین سار اصناش نوا مرزش داره یا نداره داشته باشه نداشته باشه داغش به دل من مونده چون شوهر کرده با یه مرد کوهیی سعی به من می‌رسی نمی بر می‌کردم قربت ها داداش؟ مرتزم نگاه ازم گرفت مرتزم قربت کدومه؟ هر جا بچمه دلم خوشه هر دلم خوشه وطن میری که باز نگاه بگیره ازم من اونقدر نگاش کنم که از رو بره پس چرا برگشتی که باز بری میخوام خونمو بفروشم خونه آقا بود دست قریبه بدم مشغول و ذم بتارم پیشو خدمتون میتونید بخریدش چقدر پول میخواد پولتا رو نمیخوام پول صغیر و کبیر رو نمیخوام پول خونه آقا آقامو هر کدوم خرید آخرش سهم و قافه چون آقا میخواست من میخواست منم بستنشین کویت میشه من نمیدونم به کیا به دهکارم به تو به مرتزا به آلم و آدم به دهکارم من مشغول زمه خودمم حفظی نه همینان رو میخوای بگی بگو دیگه توکل دوست داشتم یا <تصفح> خطی نداشتم الانم دوست داشتم من ندارم میدونم اولین چیزی که تو این میدون مهمه اینه که ما خرده فروش نیستیم آش فروشیم یعنی یعنی 10 تن اندونه. اندونه که ماشین تک میشه 10 تن جفت میشه 15 تن میوهی که تو جعبه میاد فرق نیمی کنه. جعبه باشه سبد باشه گونی باشه بهش میگیم لنگ بار یعنی چی یعنی یه لنگ پیاز یه لنگ زمینی یه لنگ پرتغال تنها میوهی که تو کارتون میاد موزه که کارتون کچیک دارو کارتون بزرگ کارتون کوچیک میشه چارده کیلو کارتون بزرگ میشه نونزه کیلو اینجا جایی زنه؟ جایی مرده؟ بله که عربده بکشه بزنه بخوره سر زن داغدار داد بزنه اگه من داغدار نیستم. هستی ولی آیا تو قربت دست تنها بچه خواه کردی؟ هی hey, مردم مردم مردم پس معلوم شد تا حالا اینجوری مرد بودی اتفا حلیمه بیا پایی ماما جان بیا میخواییم بریم شیفت زورمال توکله بیا okay. آقا جون مردی راهش اینجوری نیست راهش اونطوریه که بابای خدا بگم ارزمون رفت بابا یکی به من بگه خطای من چیه زانو زدی بگی ببخشید حلیمه ببخشید که لات بودم ببخشید که گردنگیر بودم دست بزن و زبون ناسزا داشتم اونقدر ار سر بهت تنگ کردم که دست مادرتو گرفتی رفتی که رفتی حالا که آمدی یه سفت با سرت نداری ببخشید ببخشید گفتی گفتی داداش؟ نه خیلی خوب مردانیگی رو نه در حق خودت تمام کردی نه در حق حلیمه از فردا قدقم میکنی هیچ کس باشه اینجا نذاره تا حکم دادگاه برسه حتی شده بساط خودت رو تعطیل کنی اینجا رو تعطیل نمی کنی صبح به صبحم میان بهت سر میزنم آقا توکل آبجی جیول فرد بریم بچه ها من اگه جای تو بودم دوباره ازش خواست کاری میکردم فرمیدی؟ بفرمید خوش آمدی خوبه؟ Lõpuks ma من هستم دراز میکشی یعنی درد داری برقی که خاموش میکنی میخوای دردت نبینم اونی که میبینه شفام دستش آراز کتای خورش ملص بود یادته تعددارم <تصفح> که بزن به هادر بود چابوش هم پسش بر نمی آور اما آراز از پسش برمی آمد کمون نکنم چرا بابا یه دفعه یادمه ستار چابوش رو زد آراز بهش برخورد داداشش کتک خورده رفت کمین کرد ستار که رسید پنکر رو از بالای تخشای انداخت رو سرش یه چیزایی یاد ای داده می داد چه کرد باش چه کرد تنبی شد، توتا قبض شد، کیش میشهش قد شد اما یه معذرت نخواست داداششو کتک زدن، داداشش اما حالا با وسط اومدن این قسم دو تا دادا شما داریم و از هم دور میکنیم دور نه دشمن دشمن آه... چه کنیم؟ پایی حقیمون واه میسیم قسممونم از روح راز بر بیداریم به کجا به کی بنده خدا خوبه آره خوبه خوبه خدا ولی خدا نمیاد تو دادگاه شهادت بده این فالگوشیه ماما جان نه مادر جده. حالا مثلا داری اتمام محجد میکنی که چی بشه؟ سنگریزه نونم میشی یا گل آقوردنم؟ دوممو میذارم دو کولم میرم آه. مادرت با این که درد داره میکشه که رفت بشه است به نظرت چرا؟ به نظرم وقتشه که جفتتون گوش کنین اینی که میگم هم جدی بگیرین زطار میره دست سارا و ستاره رو میگیرم و میرم همین الان بابا اگه قسم قسمو از رو آرز بردارین میرم پول چقدر عزیزه انقدر که کلیه برای مادرم بخرم به اون مسافرکشی نکنه زورم برسه تولد بگیرم بره دخترم برورم خیلی میارزه بابا ولی شکست وقتی دیدیم اون چکو ازش گرفتم شکست ریخت وقتی رفتم تو میدون پشتش را افتاد میشکمش میریزمش پس از رو آراز ورداری ما دیگه دستمون اون به هیچی بند نیست ورداری رفتم زندگی مزن و بچه اون میگیرم زیر بغلم میرم کدوممون مهمترین. داداشی اونها؟ یا صدتا که ب چتونه کدومش؟ من باج نه به قلبم میدم نه به عقلم باج نداده میگم قسمو از روح آراز برمیدارم این تا برادر دشمن لشه دم شما ستا بابا جنوان اگه بخری هم زنده بود همین کارو برای تو میکرد آره بابا جون می دانم نیست از امغر خودم بدم بیاد نه ده خجالت بکشم از خودم خجالت بکشم نه بابا جوان واش چنتو قربانی دیگه لازم داره بابا مامان چنتو عمر و اعصاب و حق شما بس نبود من بس نبود که به خاطر اون پا دلم گذاشتم پا دلش گذاشت آراز آرزو منو دوست داره یا من نه دین حیا رو قم دارم از دوستاشن حرف میذارم بابا کریم بوستانا نه حیا رو قورت ندادم میخوام میخوام شما رو متوجه موضوع کنم موضوع حق تو. موضوع علاقه من که پرپر پر شد موضوع ستار که با زن بچهش از این خونه رفت بیرون موضوع... موضوع منم منم که یه دل دارم و ده دل بر چابش دلبره بابا کرم جونم بچه بدری هست یا نه؟ تشون شکایت میکردین عریضه نوشتین ما گفتیم بنووی؟ یه عمر ععم روداری میگین حق مامان. الان نمیگم حق مامان جا؟ من فقط قسممو برداشتم به نتیجه نمیرسه. بچه های بدری رو به جون هم بندازم به نتیجه می میرسه. می میرس. خوام نرسه نمیخواام دنیا رو از سوراخ کلید دگاه کنم. بابا یهیکی اینو بفهمه؟ دنیا و ازش خیلی خراره اما نه اینقدر که این همه نامهربون باشه که دو تا بردره به جون هم مندازه حتی سر حق این خیلی سخته عرفت خانم سخته لیلا سخته ای خدا سخته ei دن میشی؟ هی تو بقا شهپور کردم که آرا اهل فرار کردن نیست ولی انگاری هستم هستم چون واسه فرار نکردن از بقیه چیزها درم از تو فرار میکنم <تصفيق> الان دیگه خیلی تنم یه تنهای فراری یه تونل کردم که راه برگشت ریخته نشست کرده این برای تونل فقط تو موندی زنم میشی میشی زددار بود دوماد ما بود آراز دیدی گفت علاقم پرپر پر شده آه شدیدم خیلی خوب حالا برو پراشی جمع کن مرد شناسنامت همراده دستم هم از روگوشم برداره بکرموستم گفتم شناسنامت همراده میشه دشمنه هم نشیم؟ دشمنت بشم عدستت میدم؟ من برای سال اینجا دشمنت بشم عدستت میدم؟ آره گمونم جفتمون هم از دست میدیم بر علیه دادشم باشی دشمنت میشم قبول نکن قول دادم به توکل خب به منم قول دادی قول وفاداری دادی بحدا دارم با جولید داده دو شم�이 نستا بس خودت باش سا از اقل حقی رو که کریم بسان بهش برگرد برگشت حقه اون یعنی شکست چاوش شکست چاوش یعنی شکست من شکست من، یعنی داری دنبک دست گرفتن خاله داری دنبک دست گرفتن خاله یعنی فهمی داره همه میدون تربار فهمی داره همه میدون تربار یعنی خوار شدن چاوش خوار شدن چاوش یعنی شدن الله! در باز بود، اومدم تو سلام سلام آمه علیکم نشانی جاشو به ام داده نشانی چی؟ کی داده؟ آراز واسه چی؟ شناسنامه تو کش و پایینیه، اون میزیه که روش گلدونه شناسنامه میخواد چی میخواد عرض کنه لیلا رو من نمیذارم اینجریم تو زندگی این دوتا بکش بیرون؟ من پامه از زندگی اونها که سیدم بیرون طبوب شده و رفت این دعوا این حق این ناحق ایچ به اونا نداره آقل باش بابا جان من عقل که خب میخواده اش آراز لیلا رو میخواد خودت که میدونی. باید به خدا حساب پس بدی یه طرف بابا فرزی و مامان تلاتت هم یه طرف چه چه کردی خوهر بزرگتر با دلدادگی امانتی که به سپرده بودن گلگی پدر مادرم یه طرف که میخوایی لیلا رو بهش بدی تایی ای... تا دیگه وجود نداره تموم شدارم هیچ تایی وجود نداره قسمانم از روش برداشتن تو هم شده دنبال حقم میرم اما آرزو قاطیش نمی کنم تو هم تو این دعوا قاطیش نکن بگذر از حقه تا بذارم باشن از سامه از اینجا بری بیرون یارو گردنگیر بود یه روز ننش بهش گفت یه کفن حلال با سو بیار به کاروان پارچه انقدر با چواخت تو سر صاحب کاروان کوبید تا یارو بگه پارچه این کفن حلالت باشید چرا از سامه به داقا کریم وستید چرا خودت نمیاده گرید واسی چاوشو خبر کن یه خوده به ساعت 10 مونده عقد بنشون جاری میشه چاوشو خبر کن با هم بیاین تا به چشم به چاوش بگو ای من این ما روش برداشت تا همش دوره یالی <تصفيق> به <متصفيق> آراز ببود دیاد من تو رو فراموش توکرت <تصفيق> رفت شما برو بیرون در گشتن به بدا وکی برو نیستم یعنی که هستم و از تو دارم. تو من عشقی برای بقیه آب چی خوانم عشق امشب تو ارگاد سر میکنم اگه میخوایی برم باید خیلی پیگر شی چاباشو خبر کن شانس تو تن کن من که میگم تو شانسی نداری رسول برو نیست جان چابوشت برو نیست سلام سلام برو لباس عوض کن خیلی باشیم خیله میریم خونه بابا نخستم منم خستم مقدمان. بیشتر از تو چه کندی؟ راستش آره به خصوص وقتی احسان بوچیکی رو دیدم و بچه شو به خصوص وقتی فهمیدم در مورد هنیف اشتبا قضاوت کردم به وقتی دیدم. دست گل گرفتم چک بختم میشینیم تو ماشین میریم خونه بابا. سرتو میندزی پایین جلله پدرم مادرم خواهرم که ببخشید نشستم پوشدم فکر کردم که حنیف به در به خواهر محتاب نمیخوره. منیشه قبول نمی خوه من اینشه گفت هوو قبول نمیکنه. دیدمش جلب بود تیک. گنجیش رای میکنی جای قناری میفروشی به زنت ها بیمرفت مهتاب بلند شو من خیلی ریختم بهم بلند شو گرنم به در میاد بلند شو فوتو فتوامل انجام شده خرار دادم سریم منیشه گفتم به طلاقش بدم بلند شو آرازو ترد کردم بلند شو گفتم خوراست گفتم خونوادم <تصفح> لباس حوض کن <خور. تصفح> چمدونم رو گذاشتم تو ماشین تنها برم دیگه بر نمی گردم مرد دروگوی من حق ندارم حق دارم هرچی خطابت کنم حق دارم مهتب این بستر رو به من نچسبون نچسبون بستر رو به من چی این بستلت برات مهمه ها پوله من انقدر پول دارم آره نداری نداری آریه یه مال مردمه حق مردمه طالب این فکر کردی اگه بچه ای نداریم شاید ای پششه به این فکر کردی خرافاتی بودن خیلی بده. اوه خوبه بخش اولشو قبول داری. بخش اول کدوم بخش؟ اینکه آهوناله پشوش سرت. چی میگی تو آهوناله کی؟ آهوناله کسی دیگه ای جز کریم بوستان مگه پشوش سرته؟ چیا نمیدونم ازت. رو کن شیرینکاریا تو. منظورم از شیرینکاری رو دست و رفتن نیستا. آهوناله و نفرین و خیناوی مردوزن دیگه ای پشت پشوش سرت هست؟ باز کن گذشته ای در اندهشت تو میرم تو ماشین منتظرت میشینم نیومدی میرم باور کن مهتاب مهتاب تو،, تو دیگه نه امشب تو دیگه نه مهتاب من دیگه جا ندارم من دیگه نا ندارم امشب قرص داشت همو خودم بشته میدم واسه دوو نمیم بهش بگم یه زرد. امشب ن. امشب ن. el tutas veejenev klii aaras alastav nalmune mata چطوراه؟ ثواب تکدیف روشن کردنه. بعد پیووند شد. داره کلیه میخواد همین الان. من میخوام دوباره بچه دار شم. من میخوام و من خواهر میخوام. اونی که مونتاژ خاوی دلپته. زدن نام. اشتباه. اونجا تنها موجود. سر جون مادرم دوباره رضایت شما نیست. آشیل از چیش واسه سه مشروبش مایم زده از پول دوماده یا از کلیه دختره از قرومش همه یا حق با چاوهاش بوده من دروغ بودم تنها میمانم میدان با تو آرامم بی ترس از تنهایی تنها ایمانم آشغ تر زخمی تر آرام چون آتش در زیره و برگرد و بیا دل تنگ دیدم شب تو من هر چه دارم از تو شوفه او شوفه چون اجنوب کسان را جیده